رخداد، نادرستی نظریهای های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، انام و یاد یگانه آفریدگار و یگانه پروردگار هستی با عرز سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان و همراهان صدای امید برنامه جدید رو میخوایم شروع کنیم تحت عنوان رخداد دقدقهٔ اصلی ما در این برنامه تبیین مفهومی تحت عنوان نجات هست آیا چیزی تحت عنوان نژات که مایه برتری و حتی ایدولوژیک شدن برخی از اندیشهها در تاریخ معاصر شده از یک ریشه علمی و ریشه زیست و یک ریشه تاریخی درست و مستحکمی برخوردار هست یا نه. اون چیزی که هویت این برنامه را تشکیل میده، مراجعه به فکت های تاریخیکت های علمی و همچنین بیطرفی کامل هستش. فرضیه اولیه این برنامه که به صورت یک پژوهش تاریخی گسترده، و زنجیروار خدمت شنوندگان عزیز ارائه میشه و همچنین به صورت یک گفتمان و یک گفتگوی کاملا ساده و خالی از اصطلاحات و کلمات علمی خیلی قلمبه سلمبه به قول عوام خواهد بود این پژوهش علمی رو خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد در خدمت جناب آقای مرداد ایران مهر هستیم در این مورد جناب آقای ایران مهر زمین سلام که با شنوندگان عزیز میفرمایید فرمایید شما رو می شنم سپاس از آقای دکتر محبی که در خدمتشون هستیم من سخنم رو با نام سرزمینم ایران آغاز میکنم. مقدمه و پیشگفتار بحث رو آی دکتر محبی فرمودن چالشی که امروز فضای اجتماعی کشور ما رو دوچار خودش کرده آقای دکتر خیلی رک و پوسکنده لپ مطلبو مطلب و گفتن شاید هم به چشم نیاد و خیلی ساده به نظر برسه اما مفهومی به نام نجات در بافت اجتماعی کشور ما به صورت عادی و طبیعی خودشو نشون نداده ما دوچار موزلاتی هستیم که این تنشها و چالشا برآمده از همین موضوعه ما در این برنامه میخوایم بدون هر گونه فضای پیچیده علمی و به قول های دکتر محبی بدون کاربرد هر نوع دانش به صورت تخصصی این مسئله رو بررسی کنیم و در اختیار شنوندگان عزیز بذاریم موضوع رو باز کنیم ریشه‌هاش رو از از بسیار بسیار قدیم موشکافی کنیم پیش بیایم تا برسیم به امروز و ببینیم چی شده که جوانای ما زمانی که در کشوری زندگی میکنن که یک روز در ها این جمله گفته میشد در کشور ما که مردان و زنان پاک هفت کشور را میستاییم اما امروز کارمون به جای رسیده که برخی از جوانان ما متاسفانه به این سمت رفتن که خودشون رو از نژاد برتر آریایی میدونن میخوایم بررسی کنیم ببینیم این موضوع آیا صحت داره یا نه ممنون بشیم از گفترهایی دکتر ماهیبی استفاده کنم اصلا بحثی که شما در واقع مطرح فرمودین که مثلا تحت عنوان نجاد آریایی خب ما مثلا یک مفهوم علمی رو مطرح میکنیم مثلا یک استاد علوم سیاسی یه مفهومی رو مطرح میکنه تحت عنوان لیبرالیسم خب این لیبرالیسم چیه؟ آدرس میده. خب این از کجا شروع شد از جنبش مذهبی پروتستان شروع شد ریشه های تاریخی داره ریشه در جنبش نوزایش داره ریشه در دوره رونسانس داره ریشه در افکار آزادی خواهانه داره اندیشمندان خاص خودش داره جان لاک، جان جا روسو، مونتسکیو. هر کدومشون دارای یک شاکلی فکری درست منظم و کاملا قابل درک ولی وقتی که یک مفهومی تحت ما نجات آریایی مطرح میشه ما مثلاً اطرح می میکنیم که آدرس این نژات کجاست چه ویژگی های زیستی در اون هست چه ویژگی های ژنتیکی درش هست چه ویژگی های تاریخی درش هست پس ما باید اینها رو مورد بررسی دقیق و کافانه قرار بدیم لذا ما از همین جایی یه فلش می زنیم میزنیم که اصلا نوع بشر انسان انسان عاقل انسان دارای تمدن و فرهنگ که الان در حال حاضر در کره خاکی زندگی میکنه از کجا این زندگی شروع شد چطور به وجود اومد آیا خلق اساعه بود آیا تکاملی بود و چطور این حیات در کره زمین شکل گرفت گرچه ممکنه تا حدود این مباحث خسته کننده باشه برای شنوندگان قبل از هر چیز چیزی عضخاهی میکنم خاطر این مسئله ولی ما مجبوریم برای اینکه بخوایم مسئله رو با فکتهای علمی دقیق ثابت بکنیم مجبوریم به دوره های گذشته برگردیم ما اگر بخواهیم شروع کنیم از این مسئله بد نیست اگه شما هم موافق باشید برگردیم به اصلا به وجود خود هستی که اصلا این چیزی تحت امان کائنات فضا و کرات چه تاریخی دارند چه تاریخ در واقع گرچه اونم تاریخش دقیق مشخص نیست ولی از لحاظه اختر ها و دیدگاه اخترفیزیکتان ها و دیدگاه اخترشناسان بالاخره این جهان تا حدودی به یک شناسنامه ای رسیده ما در طول تاریخی که برای جهان نوشته شده توسط اختر اخترفیزیکتان ها یه مفهومی داریم تحت وانه حادثه بیگ بیگبنگ بله مهبانگ مهبانگ بیگ بیگبنگ این حادثه بیگ بنگ چی میگه معتقده که کل ماده و کل حجم و جرم کره زمین یک گلوله‌ای بود، یک ذره‌ای بود که در فاصله زمانی 20 میلیارد تا 15 میلیارد سال پیش بسیار فشرده بله. بله. بله بسیار فشرده یه اتفاق می‌یفته که این منفجر میشه که بهش میگن انفجار بزرگ یا انفجار اولیه که در این انفجار اولیه در لحظه قبل از انفجار زمان صفر بوده این چیزی تا زمان وجود نداشته طبعا مکان هم وجود نداشته گرچه همین نظریه هم در واقع انتقادهایی بهش وارد هست یه سری درش هست مثلا این حجم بزرگ ماده قبل از انفجار که به وجمه فضا هم انقدر بود یا فضا است قبل از اون فضای اصلا وجود نداشته یا بعد اصلا فضا یا, مک... یا مثلا زمان نبوده بعد گسترش با... ماده شاید فضا, فضا تعریف فض... شده اصلا فضا تحریف اون موقع اصلا فضا وجود داشته یا اصلا نداشته آیا دکتر اوز میخوام من یک تحریزی به فرمایش شما نظریه ریسمان بله. در دنباله فرمایش رو عالی یک مسئله رو تازگی مطرح کرده که شاید دیگه خارج از حوصله بحث ما باشه نخش. اما اون زمان سفری که شما فرمودین و الان روی بعد 11 و دوازده دانشمندان کوانتوم بحث. دارن کار میکنن که ببینن پیش از اون لحظه سفر چی بوده؟, چی بوده حالا اینم من خواستم فقط کمان اکی باز به شو خانده ها بدونن که اون قبل از سفر هم بازی چیزایی بوده. بوده حالا ادامه بحث و شما خواهش میکنم بعد حتی گفته میشه که توی لحظه انفجار هم زمان صفر بوده دما بینهایت بوده. بوده یعنی شاید هم این هم در واقع تعبیر دقیق هم نباشه به نظر میاد چون خود دما برای زمان و مکان معنا پیدا می کنم بله. یعنی برای ماده پیدا می بود. یعنی ماده شکل نگرفته بود چون بعد از لحظه انفجار هستش که توی سانیه ده به توان منهای پنج یعنی یک صد هزار ثانیه هست که کوازار به وجود میاد بله. که از اولین کوازارها اولین پروتون و نوترون و بعد از اون الکترون به وجود میاد که هسته اتم و اون الکترونی که دور هسته اتم به وجود میاد و گفته میشه که اون اونهایی که از جمله استیون هاوکینگ که در واقع طرفداران این نظریه هستند و من ارجاع میدم به البته خب ادبیات اینو در واقع دانشی که در ایران تولید شده بسیار پیچیده است. عامه مردم خیلی نمیتونن اینو بخونن. ما به خاطر همین ما خیلی زود میخوایم رد بشیم از این مسئله ولی ارجام بله بله. میدم به یک دوره مجله نجوم که فکر کنم از سال 71 این قضیه انفجار بزرگ رو شروع کرد. یه سلسله مقالات، یه 120 تا سلسله مقالات هست. زبان نسبتا ساده مثلا یه شخص حالا حدوداً دارای یک لیسانس مثلا حتی عادی هم علوم انسانی هم اگه مثلا بخونه شاید متوجه بشه بله. مباحث اون رو که اولین اتمی که به وجود میاد اتم هیدروژن است که دارای یک الکترون و یک پروتون هستش بله. و گفته میشه که هیدروژن اتم هیدروژن درست یک دقیقه حالا اینا همش مقیاس های دقیق نیستن یه مقیاس نسبی هن. یک دقیقه بعد از انفجار بزرگ اولین اتم هیدروژن شکل هست مفروضات فیزیکی بله،, بله، یعنی مفروضات بله. فیزیکی اینکه خیلی دقیق نیستن چون دقیقه و ثانیه و ساعت بعدها بله. به وجود اومد اینا چیزای دقیقه نیستن حالا وقتی که ماده شکل گرفت گفته میشه که حالا باز هم یک چیز دقیقی نیست بود یک هزار سال بعد از اون اولین صحابی هایی که ستارگان از اونا شکل گرفتن به وجود اومد که بعد از اون عبرهای هیدروژنی ابرهای هیدروژنی که بعدها منشاء ستارگان شدن منشاء به وجود آمدن ستارگان شدن و این ستارگان مجموعه ستارگان اومدن کهکشان ها رو به وجود آوردن و دوره معخره عالم هستی یا کیهان یعنی تو این پنج میلیارد سال اخیر پنج میلیارد یعنی دوره سوم مثلا ما بپذیریم اون محاسبه استیون هافکینگ رو که حدود پونزده میلیارد سال هست تو این پنج میلیارد سال اخیر که گسترش کیهان هستش و یک چیزی حدود نزدیک تا اونجا که آخرین آماری که من فکن سه روز پیش گرفتم یک هزار و دیویست میلیارد کهکشان تا حالا شمارش شده تعدادش به. تعدادی و این کهکشان ها مثلا ارگول میشون بازی این که ما توش هستیم یعنی منظومه شمسی ما توش هست حدودش 500 ملیارد ستاره داره ابتاهای دکتور اینا از رتالی مفتظر هستی کهکشان هایی که تا حالا نورشون به ما رسیده دقیقا رسیده نورشون حالا رسیده. که هنوز نرسیده حالا هنوز شما بیشده شاید زنده ما هم در واقع اصلا شاید سرن ده قد... زمین هم قد نده قد نده که اصلا شمارش بشه شمارش خواهد شد تازه همه شمارش هم اینجوری نیست که مثلا یک تلسکوپ فضایی هابل مثلا وایساده یه سری مثلا شمارشگرهای الکترونیک هست اینا شمارش بیه تخمین اینها اکثرن. بله یعنی مثلا تخمین اصلا تخمیناش تقریبا دقیق بله. آره بله. خیلی هم برست. پرت نیست بله دقیقا. یعنی یک صحت معناداری داره بله از به حضورتون که خب برای زمینی که ما توش زندگی می‌کنیم دور یک ستاره‌ای می‌گرده به اسم خورشید یا شمس به قول عرب‌ها خب این خورشید یکی از 500 میلیارد ستاره کهکشان راه شیریست است بله کهکشانی که قطر اون حدود 150 هزار سال نوریه بله. یک قسمت پای یک قسمت دیگه یک مجموعی از ستاره سال نوری هم برای دوستان لالهی تعریفی من بکنم سال نوری یعنی اینکه چون دیگه با کیلومتر اینا نمیشه این های نجومی های با اینها ما نمیتونیم در واقع این سنجشا رو بسنجیم از اتاق فرمان البته به بنده اشاره میکنن که مدت قسمت اول برنامه به پایان رسیده ما همین قسمت تعریف سال نوری رو میذاریم برای قسمت دوم برنامه و با اجازه شما از شنوند. شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم شنوندگان گرامی با عرض تشکر از توجه شما تا شروع قسمت دوم شما رو به خداوند بزرگ و منان بسپاریم خدا یار و نگهدار